سبحانه اللہ رب العالمین و صلی اللہ علیه سیدنا رسول اللہ و آلیه طیبین الطاهرین المعصومین و زیاده دائما فعل اجاید مجمعین اللهم خیرنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمت کیا و ارحمت شد که مسئله نجوم بین اصحاب ما ولو مرمون شیخ دیگه مناصبت مخاصب مطرح کردن همه خب بحثش خودش بی نفس جره پیدا کرد و انصافا هم خب خیلی مسئله مهمیه مخصوصا که قده از آقای هم مثل مرمون صاحب وسائل قدس الله سره و شریف اصلا عنوان باب زدن باب 24 از اوامای اقتصر و حسن بگی این چاپه مرهوم های رهبانی من غالبا از این چاپ میکنم چون اون نسخه ایه. این چاپ رو من درش هواشی نمیشتم سابقا مثلا در 15 سال قدر 20 سال قدر لذا محل مراجعه من هر سون از هواشی خدا استفاده میگونم فلقه فلقه یاد مورست و ایشان عنوان باب رو زدن باب عدم جواز تعلم نجون خب بیدون این عنوان خیلی سنگین یعنی الان امروز در دنیای علم ما ها یاد گرفتن علم حیعت و نجوم حرامه خیلی مطلب سنگی نهتاب بیشه عدم و جواز تعلم نجوم مطلب سنگی اینه مطلب کمی و عمل به ها و ایشون اضافه بر اون که حالا بعدم اینشالا خواهیم گفت در اون بحث بعض شرمودن و, و تقدمه این باب دوم ایشونم میخونیم در عباب سفر و تقدمه في آداب السفر مایا دل علاو عده جواز اعمال به النجوم و تقدمه علاو الامره به احراق کتب خاله یم میگیم به تلفظ زیباست علاوه از آدم تعلّم میگیرد یک مشکل از نظر فرهنگی در دنیای روز از اون بعتر کی ما ما سعی میکنیم کتاب النجوم رو دستور میدیم آتش زدنی شما میذین شما خود کتاب سوزی یک ابتدای دفرهنجیه از این کسایی که تاریخ واقعش داره راست هستو بعضی از بانوان یه لکه نمیده تاریخ زیگ میشه حالا دیگه ایشان قدرسا مرحوم صاحب وسائل لدن ترجیح و ولی امر به احراق کتبه ها این خیلی مسئله سنگینیه انصافه مرحوم به هارمیه مقداره که چون خودشون رو نجوم بلدن سعی کنن در آخر بحثشون یک توسه ما بودن بازم احتیاج کنن که انسان مثلا یاد نگیریم اگه منزه خبل ای اینا اما دیگه امر به احراق کتب توی عبارتی ایشان نیامده شیخ هر را آمولی اضافه بر حرمت تعلمین ای می که امر داریم به احراق به کتاب سوزی اصلا کتاب های نجوم را آدم آتش بدنه که خیلی آدم آیان دقیقه مسئله که ما بودن تو تصور اطراف جاعت موضوع بشه بعد یک فتحایی در این مطلب صادر بشه همه این ما که این گفتیم به این مناسبت این باب این, با این روایت خونده بشه حالا که دیگه مرحوم شیخ هم واژه بحثی نمودن شدن ببینیم مطلب چه بوده، اوضاع چه بوده. تقریبا در میان علمای ما کسی که باز به عکسی سعی کرده که ترویج بکنه و تایید بکنه مرحوم سید منتابوس در فرج الماحمومه. ایشون سعی کرده به هر تایید بکنه علم و این درست و مواردین بود و شواهدی بر و تحقیق بود در کارش داشته باشه. هست که دو باب مرحوم ساب وسائل در این کتاب وسائل قرار دادن من اول که اون باب مال سفره درست شده عباب و سفر رو گردن اونجا هم نوشه عدم جاوز تعلیمه اونجا عجیبه همین عنوان باب اونجا هم دارن توی به هسته به همین چاپ مرحومه ربانی که در دست من هست جلد هشتون حبان عواست کتاب باب و نزم بیست و پنج به اونجا در باره اونم عدم جاو مثل همینجا ایشون فتوازن به عدم جهاز تعلیم ندید به اصافت مروم شیخ خیلی صلی سره به دیاس به خیلی از دوزشتگان خیلی زحمت کشیدن سعی کردن مطلب رو تنگید این اصل بحث روایت اولی که خوندیم روایتی بود که مرحوم کلینی در این جهت عبردن البته ارض کردم مرحوم صاحب وساهر مجموعاً از کتاب کلینی چهار تا روایت روایت که هر چهارتا هم از روزه کلینیه به قصد تمام این روایت رویت که ایشان مرحوم صاحب وسائل ذکره از کتاب کافی تماماً از کتاب روزه ایشانه باید که در روزه ایشان اونایی که شاید مثلا مرتبس بشه به کافی بیشتر من آیان اگر مایل بودم در این کتاب بهار در این چاپ که سه فهرست در وسط یه چاپی هست که این جلد فهرست برداشتن با آخر بردن شماره جلد فرمون کنه به هر این چاپ جلد پنجه و ایشون وارد بحثیشون به نام علم و نجوم ولی عمل به حالا برای این که این شاله کم مراجعه آی بشه از شماره 21 ایشون از کتاب کافی نقل کردن 23 از کتاب کافی نقل کردن شماره 24 از کتاب کافی که شماره 27 یعنی بیش از اون 4 که مرحوم شیخ نقل کردن 27 باز 29 و, و اینا هم از کتاب کافی است که مرحوم صاده‌ها به اصطلاح از این کتاب کافی در فرق اون مواردی که مرحوم آقای شیخ حرامی ورده مواردش از چهارطئه ایشان بیشتره وقت تمام این موارد یعنی تمام چهارطئه ای که در شیخ حرو هست و مواردی که در کتاب بهار هست تماما از روزه است این نظر شیفو زیاری نافرند اونها در روزه کافیه یعنی از اون مجلد کافی که محل اعتماد میست این هم بخواستم خاطر حرض رو کنم که به اصطلاح اجمالاً ورد روایات باب رو برو روایتی که ایشون در اینجا نرمی کرده از عبدالرحمنشن سیاهی دیروز خوندید احض شد که این روایت رو اضافه بر کتاب کافی مرموم شی سیل ابن تاووس در فرج المهموم هم نرم فرموزن قیل از مستر چون از کافی هم ورده از اون هم ورده. و دیروز عرض شد شما نمیدونیم چرا مرحوم صاحب وسائل روایات فرج المهموم رو که علم او در دروازه نجوم مرحوم شیرازی نبوشن در اینجا نقل نکرده بعد امروز که مراجعه کردم تو که آداب و سفر یکی از روایتش رو کرده کتاب پیشش بوده شاید مردم شیخ به سلام ندونستم والله انصافا هیچ نقطه خاصی الان به ذهن نمیاد انگار کتاب در نبوده در اون بحث آداب و سفر یک روایت از کتاب فراج المهمون نرم میکنه. کنه لیکن فراج المهمون بیش از یک روایت داره. یه مقدار از روایاتی رو که ایشون نرده کرده مرحوم حاجی نوری از تدرک رو برده لیکن کامل هرش به همین کتاب بهار آمده هم بابی که از بهار آیانه یخواست از در بهار هم با عنوان انجوم عنو عنو با رمز انجوم و آخراش هم کلام ایشان رو برده وقتی در کتاب فراجل محموم گاهی اوقات مسادر حدیث رو بهتر محروم میکنه بیشتر محروم میکنه من ارز کردم واقعا محروم سیمتاوس به این لحاظ خیلی وجودش محترمه این خیلی یکی از بزرگانیست که خیلی به دقیق و با وست کتابشناسی کتاب شناسی خوبی داره اصلا این کتاب نسخشین تاریخ نسخشین است و... و همه رو در میگه اما به ذهن ما خودش بدهند حدیث خاص نخواهد بود ذهن ما مسادر خوب خود اختیار شده کرده بقول همون شعر مرعبه ناز رو تو می‌کنسه یکی یا ما تو که حافظی بعضی کلمات داره که نشون میده خیلی اون فنیت لازم رو در این جهت نداره بعضی که خیلی قزااحتوار هم هست حالا خیلی حالا چجوری از روی درس می. میخوند اشاره میکنند اینجا هم داره این بحث نجوم هم داره در اشاره میکنیم و کیف ماکان از این جهت قابل استفاده است و این کار خوبی بود که یک کتاب شناسی از مسادری که در اخیار مرحوم تاقوس بوده بشه که اخیران این این که از این اشخاصی که در مقصد مسال شیعه خیلی کار کرده کلوه برد برسلا یهودی هم هست روی اسرائیل هم باشه اما انصافاً روی مطالب شیعه خیلی زحمت کچیده حالا مستشد حساج به خود شرقیه دیمال اسرائیمال که نبا دور قروی حسابه شده روی مطالبشیه ایشون کتاب خانه از منطبوسه چاف کرده و زن کتاب سال جایزه ام هم گرفته یک گلقه انصافا خیلی زحمت کشیده هفتانی وقا اما منشون سابقا یک نگاه اجمالی کردم به این مناسبت همین بحث امشب نگاه کنم قلق خلوط هم زیاد داره الحمدلله. ایی هر فایض نامردد داره قلتنم داره چیزی که نتایجم داره من برایش میگم که خیلی زحمتی شد نه قلتوش از یادم. حالا ما انشالله اولش را که از نکته جای پیشامد، اون جاه رو توضیح میدیم مناسبت بحث خودمون در کتاب جای خودش. مربومه مجلسی در این جلد هنجارهاش شلوها سختی 252. چون من گل نخو، پیش من نبودی. داشتم اون یه از من بازی گم شدیم. لذا از این کتاب مجلسی فعلا میکنن به اصطناد ایشان بعد از اینکه برامو این رواست به این رواست رو به اصطناد این رواست کرد از رو مقال و در حدیث اصحاب اونا فی در اصول. خیلی عجیبه این مورد که از عجایب این تعبیر از برامو سلیم تابوس تابیر داره که عجیب غریبه، این هم جزوه تعاویر نسبتا عجیب غریبیشونه حالا من چون عرض کنم براتون تعاویر مثلا عجیب و غریب و شما شاید مثلا ترجم بکنید من یک می خونم الان که بقیهشون انشالله بر توضیح خاصی و انشالله عرض کنم یک روایت ایست که امیر المؤمنی به یک منجمی که در اونجا به ایشان صحبت کرده امیر المؤمنین پیش ایشان حمله میکنه به این منجع میگه که حرفا دروغ است و هر کسی حرفا اکسو تاثیر به پیغمبر مثلا گفتو مطلبی اینجوری رو به ایشون بعد در این جلد بهار صفحه 265 ایشو یه قاضی از جای علی بن تابوس شی کتاب النجوم بعد ما اوردل حاضر روایت روایت که نهج البلاغه بعد میخونه بعد ایشو سندی داره به عنوان قیون الجواهر تعلیق ابی جعفر صدو. از اون کتاب نامه سرانشین از محمد بن علی ماجلیوی محمد بن خاصه خود اون ماجلیوی تصیق نداره از تضیف هن محمد ابن علی قرشی ابو است که به کزده از کذابیم هن نصر ابن مضاهم مغری من منقری درسته هن عمر سر که از مشایقشه هن یوسف ابن یزید، هن او، ما عرا درمی رو مونیم حالا بعد من این می خونم چونی خونده بیشن آن؟ بازه. بعد مرحوم سیدم تاووس بعد از اینکه که مرحوم سیدم تاووس این حدیث نقل میکنه میخواب مبانی حدیث چناخسی ایشان رو براتون روشن بکنم هدف اینا آده کار بعد قال ان نفی حاضر الحديث ادت رجال لا يعملوا علماء احل بیت علا روایت و یم نامن یو جبد عمله و اخبار آهات من عمل و اخباره و شهاداته که این سند زعیفان خیلی خرابی داره ایشون هر خیشان بعد یه وفیهم عمر بن سعده نوی رقاس از اجاره بیدیم که استاد نسبب مزاهم منقری عمر بن سعد و گرفته عمر بن سعد قاتل با خوف امکمال کرده واقعا جزوه اجایب ما صدره انشاءالله بگیرم مثلا حواستیشان کاملا آمودن پردید آخی معده آمده زوی رفیهم عمر ابن سعد نبی عقاس مقاطر حسین تو این اخباره و روایاتی مج... هی مجهورتون ولا یلتفتتو آره کن با حالی هی ما یروی و یسند و یسند و اله و قول مرموم محج... مجلسی این بله. برده اولا سند خب شما درست سنندار بحث داره اما این در نقد بلاغه امام در عده از خطب میگه مشکور من المشورات و لذا اورد حسيه في نقد البلاغه سيد العزيز مراديش اذا دعبه ده عن يربي ما كان مقبول طرفين و ضعف سند روايه صدوق آورده که نه لا يد الله ضعف شاهن اسامی و عمر بن سعد الذي يروي عنه سن موزاهر ليس الملعون الذي كان مهاجر این کجا که ما یاد کتابی کتاب سفین شما آماده از مشایخ نسبت به مزاحم کدیس پنجاه و پایتیشه. اکثر ما رواه و فی رواه و انها را شد و لم یکن من جمله سوابط الحجیز عملت الاخبار حتی یروه و یاری آنواده اخبار کثیره. بعدم نه آخر کجا؟ اون سال شصت هجری شصت و نیم هجری که مختار امر سعد کش، برم امروز 100 سال شستفان دیگه که مرده کجا با دسته نمازهای دیویی سال دیویی آیا چیو بعدی بیخوره؟ او در توسط مختار کشش او و این ون رواج نه انسان ها بعیدن جدا بعدی مستحیل است و فعلا نسبت کار من اصحاب باقرشان معلمنی است و ول مرؤن لام یادگیرش بعد خوشن ایلاقلیل ه کدی خب یعنی ایلاقلیم تو مختار کشش 500 سال یا 64 و شواهد علاکو می غیره کثیرتون شواهد این جون مساله هر از این یک مقداری من خاص این نکته را ذکر بکنم که مرحوم سید ابن دار باز یک مطلب دیگه هم داره که بعد عرض می‌کنم خدمتتون اونم مطلب دیگری هم در یک جای دیگه داره در مسائل حدیثی ولی ازاب ما فقط به سید سیدرت سید طابوس رج... سید سید نوکته نظر ما به مرحوم سید این است که کتاب مقابل شد و ازش نقل کرده. این مقدارش خوبه اما دیگه تحلیل ها اونها یک مقداری کار داره این تعبیریشون برای با حاضر حدیث اصحاب و نافل مستنفاته ولی اصول عجیب. عجیبه هر در خود کافی توی روزه آورده، خود سند گیر تاریخی داره گیر فهرستی داره که منفرد کلی چطور ایشون میگره واقعا از حاب نفر مصنفاتی و الگستون؟ من میمیدونم. واقعا از مقام مقام سید تاوز خیلی عجیب. بعد میفرمد ورواه محمد و عبی عبدالله که امالی. این هم خیلی عجیبه. این شخصی به نام محمد و عبی عبدالله در رجال ما که همین معاصر، چون زنده از این کل برد. همین معاصر در کتابخانه خانی سید تاوز، شطیقه محمد این جعفر باشه خب راسته این در پیش ما محمد این عبدالله به محمد این جعفر اصدی من توضیح برد که شخص بزرگواری سه عرب الاسلم هست یعنی مولانیست از بنی اصده اصلش از بوده در زمان محمد این با عنوان نش در و تشیب به ری میاد که سنی بودن و چون با عنوان با در امین و درمین نماینده نماینده نماینده محمد ابن اثمان بوده که نماینده از دو محلی کاملا در تخفی زندگی میکرده چون پی بردن به ایشان مسترده به بردن به پسرار محمد ابن اثمان از اونجا هم که مسئله ما زمان لذا محمد ابن جعفر هم بهش محمد ابن ابی عبدالله میگم مزه جعفر ابی عبدالله هر دو یکیه الاسری ساکن رهی بودن بسیار مرد است، بسیار مرد جلو قدریست و در راه نشت پشلی و در رئیز حماس زیادش ظاهرن ایشان تخت متخفیان زندگی میکردن و مشایخ و بزرگانی که با ایشان تماس داشتن و از ایشان حدیث نمتنن قالب شد مشایخ درده سه و چار هست بسیار ما مثل بچه طلبه ها بزرگان اون با ایشان ملاقات نکردند. اینه که مثلا میشون اون این ش دو تا چهار مقرد اسم که از محمد ابن عبدالله نعبیم کنه همیشون یه با بچه تلانه چیلی جزو بزرگاه میتونه ظاهرن به خاطر تخفیه ایشان بوده و نکات بسیار مهمی هم این شخص نعبی کرده راوی زیادت جاونه همینه زیادت جاونه این آغاست محمد ابن جفر هسته بسیار مرگ بزرگاه و جلگر چون یه رضی هم صحبت کردن میرون خونده توی آیه این معاصر ما نوشته که این مح... نواز عمالی بعد مانه این محمد ابن جعفر اسدی باشه راسته یعنی راستش که این معنا محمد ابن عبی عبدالله اندل انصرا به همین عصدی رازی می‌خوره. کنه هیچ کس برای عمالی ننوشته اصلا من روز عمالی زمان او رست شده باشه من نمیدونم زمان او عمالی رست شده بوده یا رست نشده بوده عمالی شبیه تقلاتی که با استاد میشت میشت می نوشتن. اسمش عمالی. و صد نمیشه پیش روایتی خودشون بگم بنویسن میشه اسمش اعمال به هر حال در هیچ یک از مصادر ما به این محمد بن جعفر اسدی رازی کوفی که تهران در ساکن تهران رای بوده کسی به این کتاب اعمالی نسبت نداده حتی علاوه بر هم در کتاب از ذریعه اعمالی ایشان خیلی هم عجیبه اونم خیلی عجیبه چون آو خیلی مقید حصر اینطور که کتاب اسمش اون از ذریعه واردش کرد. ازا رافی وارد کنه ما او وارد به نام عمالی محمد بن ابی عبدالله ما هم کتابی اصلا کلا نظری خلا. حالا این مرحوم سنتوس رو دونر کرده چی بوده که محمد بن ابی عبدالله قاتن کسی دیگه‌ای بوده باشه در این دونه عثادی باشه انصراف لفظ بوونه اما بسیار بسیار بعیده که مراد اون باشه. لذا الان اصلا نه از کتاب و نه از معالم اصلا رو معلله تشخیص که کیه. حالا این کتاب آیا هست یا نیست؟ این یک مشکل اصاسی خیلی رضا و به محمد بن جعفن من روی یه نکته با یه مناسبت اعزم کنم در کتاب اصنات مرحوم آلخویی محجم یک محمد نبی عبدالله نقل کرد دواره باید فلان بوده که ایچ محمد اصابیه هی دو صفحه هم بحث کردن میشون این ترجم محمد نبی عبدالله اصلاد ننشه ایشون که اون محمد بن نبی عبدالله محمد ابن امام ص که معروف به محمد ابن جعفر چند دفعه میعنید بس مرده به اینجا ریزه روحاتون شون به این قصد دیگه رستند و دیگه میرشتن اون مطالب اساس نداره ایشون محمد ابن و از اجایب کار اینه که ایشون روایتش پیش سنیا پیش از, پیش از چیه هاست و فوق الادم تو اولاده بام صادق زیبا بوده لذا در کتب انصاب و حتی در اهل مدینه به به خاطر زیبایی، که داشته این محمد دیوادی اون محمد نبی عبد الله قیرییونه ای اون محمد دیواش پسر اون صادره و ها هم در بعض از انقلاب ها شرکت کرده چون که سمت در انقلابه هایی که برای بنی عباس بوده ایشان شرکت کرده یه بار اون بحث نمیشم که نمیخوام وارد این بحث پس این رواه محمد بن ابی عبدالله فی عملی ما این را الان نمیدونیم ولی بعد البته صدقه استثنایی که این شهر انجام داده در کتاب افتاب خون سیمتاووز اسم این کتاب و محمد ابی عبدالله و نواده در کل آثار سیمتاووز همینجا آمده جای دیگر نیامده اسمش یک بار آمده بیشتر بعد فرمودن و رواه و محمد ابن یحیاء اخو مخلص با قاق چاپ شده که این حاشیش نوشته که محمد ابن ایسا شده بعد از اون سخونه اخو مخلص نبوده این هم خیلی مطبوعی که ما داریم فعلت نشه این ها هر دوش خلطه سریش باقیه مغلص باقیه نجاشی هم داره محمد ابن یحیی خسنی اخو مغلص خود محمد ابن یحیی ها سره هست و زروره مغلص درست نمیشه آن من میشون مغلص از اون مشروع ولی اون وقت اشین نشته رواه ها محمد ابن یحیی اخو مغلص انه همماده نو اسمان این هم الان در اختی نمیدونیم آیا واقعا ایشون از چه کتابی نهاته اما در مجموعه آثار مرموم سلیمتاوس به نظر اسم این کتاب دوبار یا سه بار آمده اسم کتاب محمد ابن یحیا دوبار یک جا هم ازش تبیل کرده به اصل محمد ابن یحیا اون چی که ما الان در کتب داریم در مون کتابان اصل نداریم ظاهرن کلنه اصل هم سلیمتاوس خودشون ابداع ترمون در نظر موارده که خود پس بنابرای این حدیث با تمام اصالی که داره قابل اعتماد نیست و کلام سیده رحمه الله که از حامراخل مصنفاته بر اصول نال کردن این هم قابل اعتماد نیست این راجع به حدیث به لحاظ برد اون وقت خوب ده قصد یه چیزی که من میخواهم دنبال اون نکته اساسی رو شما را آشنا بکنم اینه اولا این روایت داره که بله لا تضر رو بدینه رو این روید داره که علم نجوم ذرن نمیزه و میشه انجام داده این هدف سید این بود که اثبات بکنه که مثلا تعلم نجوم حرام نیست لا تضر رو بدینه که نه حرام نیست تمام هدف برای ما سید توسیده حالا سال بسال قاله که نه تضر رو بدین اگر دقت بکنید مرحوم سال بسال اینطور طوری میگه بعد از اینکه حدیث یک تمام میشه اقود یعفی و خب ای یعنی توی عجیب چون س... من مصابه بسایل فرمی چون ساراس های تعلیم علم حرام میدونه هم بعد هم جهاز تعلیم چون ایشون تعلیم علم حرام گرفته لذا میگه یعنی باشه بود سه نزاوس چون حلال میدونه یه حاله معید و قدر و سعی کله برش اصالی متعدد نبید کنه دقصد تعجب نکن چون سه نزاوس یک جور با این حدیث بر اون صبت ها جولییل برخور کرد سر این. این یک مطلب مطلب دیگر تو این دوست که ن جولا حل و نظراففی آ و جوی بعد ما اشغال نداره بعد امام میفرماد لیس کممایقولون لا صه رو به دی به وقتی نظر علمه بعد هم تو مقال انکم تنگرون من منها کسی اوولی و درک وقلی هوولایی انتخابه یعنی شما درست ج نگاه را ااحاطه نداریید چرا ااحاط نظری؟ اون قابل ادراک نیست، احتمالی کسیله. اون کایل یک زاویه، شما اگر هر چی در یک زاویه نگاه بکنید، کاین آکایی محدود میشه دیگه. تغییر نمیکنه. اصلا دیده ایسان. شما همین ساخت ما از این جور بیشینه نگاه میکنیم، از اون این از بیشینه میگیم، از اینکه شما نجور رو از یک زاویه محدود نگاه میکنید. وقتی از یک زاویه محدود نگاه کنیم، خود نظرت احتمالا میشه. شما اگر احاطه پیدا کردین خیلی خوبه اما احاطه ندارین میکنه و دلیلहू لا ینتصاب و من فکر میکنم از اینجا ساب و ساب دیگه نقد نکرده در بدر های ربانی در حاشیه نکرده دیگه از قرآن خوبه مرموم های ربانی بعضی جایی که تحقیق شده ایشون عبور دادن رد کردن بعد هروندن این نکته جالبیه این نکشه خیلی بچن تصبون علی صالح القمن چون این مرموم مجلسی هم شهر داده بیان تحصه بونه چون این بحثی بوده در تحصه تاله و نجوم یا از راه شمس یا از راه قمر یا از راه تواکب احکام در می امام می شما فقط از راه قمر اگر از راه قمر با نسبان بکنی احاطه ای به تمام موضوعات دیده فلم قال اتر می کن بین مشتری و زهر من دقیق قال الله تد بین از زهر بین القمر قال الله قاله الله والله قاله اتر دیدی آنه یک نکته اینجا من میخواهم یعنی توضیحات رو از رو که خیلی مهم کم بین شمس و بین سکینه یا سکینه در مارجوری بخونم چون انوز لفظشی خیزه نکردم من دقیقه قلت الله قلت الله والله ما سمعتو من اهد من المنجمین قبل خیلی ترجیبه اینجا بلا والله اختفالی میکنه ما سمعتو من اهد من المنجمین قبل یعنی نکتر مخاطم از که برای ما ماه الان داری اومد یه حدیثی رو میدینیم مثلا اختلاف نصفه میگه ما این متن درسته مثلا همین روایت در کتاب مرحوم شیخ خورا آمدی در این حاشیه که مرحوم آقای چیز نوشتن آیه به اصطلاح ربانی حفظ تدری کم بین سنبوله و شمس بین شمس و سنبوله به جای لرزش سکیه سنبولا بودهران فقط قواعدم سمبل روزه چون سمبل از برج بوده مثلا برج شهریار سمبلش هر هران که میزانه که میزانه یا ماه بعدش ماه بعد چون سمبلش دریار باشه علاوه بر اینکه 8 درجه علاوه بر اینکه این سمبولا روی از 6 شیشم یا تا 8 تا حالا داره خود من همایلم به این بود که این کم بین از سمبله و شانس باز باشه این سکینه تعریف شده خوب چرا این ماله هم محدودیت علم بشری چون با سمبوله چیزی دیده بودیم سکینه را نشیده بودیم شمس و زهره و سمبوله و این اسمش چیده بود حالا بعد در این کتاب مرحوم مجلسیشون سکینه آورده از عجیبه اینه که اون یارو هم عبدالرحمن سیاب اگر باشه میگه ما صنعتم من اهل اگر دقت می‌کردید معنیش خیلی هم سکینه هست. حالا ذهنیت ما سنبوله خود اما سبیه اینش همون سکینه هست ما سبیه تو من اهل من المنجمین قد و چون بر همه صاحب بهار خودشون به نجوم آشنا هستن که زیاده ارز کردن ایشون می بله بعد می فرماین بعد اینکه وده این سکینه ایشون اسم سکینه آوردن می فرماین اسم و پوک قبل غیر معروف اندال منجمی این صنباله که ما خیال می کنم به با غارب نسیم <تصفح> این صنباله درسته این که من همیشه عرض می کنم این نقطهی ای که مخام بیاریم همیشه روالاست و نسخه بلده مختلفیش مختلفشه بیاریم گاهی قادم اون نسخه بلده که این از شما خلطه همون درسته <تصفح> ما تا حالا خیال می کنم سکینه غلطه صنباله درسته برد منوشه نه عمر و عکسه سکینه درسته صنباله غلطه ایشون می معوم آییمسی او اسم کو کهب خیرره معروف انل منجب لغو دهل فل احکانام خیلی کیف من نمیدونم اول و اوللا ان سب اما اول درسته که سکینه باشه ولی گفت ما همه من هه منن منجبیم بعدور میوهه نه میزن همون عظیم مطلب که بالاتر تقریر کردیم، این مطلب من میگه مطلوب... خیلی عجیبه. این یک مطلب بسیار لطیفیه که انسان باید بهش بکن بعد در اینجا بله بعد حضرت با سرمون کم بین از سکینه و لوح محفوظ در دقیقه قال ما سمعت منجم من قبل. قال ما بین کل واحد منهم الا صاحبي ستی او دقیقه قاطعا ستول بال باشه. این در اصلا در نصر سرعونه شک عبدالرحمن صبح مقالی عبدالرحمنه حالا حساب و اداحسه به الرجل و عرف قصر و فی وسط یا اجمه اجمه ایزا. حتی یک اینهی که تو نیزاره میتونه حساب بکنه خیلی اجمه سه تاوز امزن این که این فی آقایان درستشی براز میستن ولی علم حقه و عدد ما ان ها و عدد ما ان یشار ها تمام رو میتونه حساب بکنه و عدد ما اماما، ها و عدد ما خلفا، ها و امام... حتی لا یقبا علیه منخص ولی اجمه واحد یک یک نی هم توی نیزار این بزرگی بر مخصیب می کن اصطلاح فارسی ما میگن سوزن توی امبارکا پیدا کردن سوزن امبارکا میتونه با این این پیدا بود از این روایت زیر روایت کرده ما این مطلب این مطلب اینقدر حق تأثیر نجوم بر زمین اینقدر حقه که انسان میتونه حتی دقیقا نهی که خیلی شبیه همه حتی نهی رو دانه دانه تشکیف بده و بعدم فرمونده یک روابطی بین اینا از بین زهر و این خوب در من چرا ام رو خوندم وقت شما تو این بحثم بحث خارجی گرفتم یک نقطه دید این مط باز مرحوم کلینی در کتاب روزه کافی در چند صفحه برد این اینجوری داره این کتاب روزه دوم هم چون یه وسائل حسن اول از وسائل بکنم تا نگاه کنم وسائل رو شماره دو یه وسائل و ان احمد بن محمد اقتدار کردم به اسم احمد بن محمد و علی بن محمد جمیعا منو کلاجی دو تا از مشایخ داره که اسمشون احمد بن محمده که احمد بن محمد عاصمی که در بغداد بوده کل به کوفه و بغداد آمده از امیه ها غیر از اون سفری که بعد از اون ساکن بغداد شده ایشون برای مقام تهر ملحدیس به کوفه آمده از عده مشایخ کوفه ایشون حدیث نه بغداد اومده از این مشایخ بغداد از این احمد بن محمد عاصمی ایشون بزرگوار و سیده جلیل برد. احمد ابن محمدی که در کوفه ازونعرف میکنن احمد بن محمد بن سعید معروف به ابن عقده که زیدی بوده بسیار بود، خیلی فوق العاده بوده مثلا کتاباش آموز بود کتاب یاد چیه گیبس های نمونه کاری نمونه جامعه مثلا در احکام یا در احکام تاریخ یک کتابی ایناش که هیچ از حال استنساخ نماد اینا قفسه جل 800 جره هر چی روایت کرده بار چند تا شطر میشه ده. چندین دانشگاهی و سخن کو اعد بخاصره بزرگیش هیچ از حال نداره هر چی لباس موضوع بود جمع کرده خیلی فوق العاده است یک از واقعا ممسعه های دایره های بزرگ حدیث و رجال ایشان به حساب میگه من سر هزار یا 3000 هزار حدیث سره رو مثلا حفظ کرده لذا عاجب ده ی نقطه زیدی مذهبه اما هم پیش اهل سنت هم شیعه و طبیعتا زیدی ها عنوان داره در کتاب‌های ما ایده از این معاصر به غیر معاصر نوشتن که این متفق علیه بر قبولش حتی سنیان این درست نیست در داریم از کردم ایده در اهل ایشون قبول نداره تشریح در واقع ایشون تذییر کردن ولی بله ایده ایشون قبول کردن اما علمای شیعه به قبول کردن ما در رجالی های شیعه کسی نداره ایشون تذییر کرده باشه علایه‌هار احمد بن محمد به احتمال بسیار بسیار در اینجا ابن عقده باشه از مشایق کوفه ایش علی ابن محمد از مشایق قوم ایشانه که احتمالا دایی ایشان باشه معروف به علان کلینی دایی ایشان بوده این استبال هم داره پسرمون بردار باشه بس علی ابن محمد بردار باشه حرزشون اجمالا خوب هم اونطور ابن عوضی که از اجلا هست از اجلای باباتو ان علی ابن الحسن تیمی در این کتاب تیمی آمد در رساله در بعضی از نو سخت هم میسمی آمد اگر میسمی باشه از نواهای میسم تنماره اما بعیدیشون باشه ظاهرش همون تیمی درسته چون اینا از عشقه تیم الله همه. این ابن خضال پسره یه روز ارز کردن از ابن خضال به دو باسته نقل میکنه از ابن خضال پسر به یک نقل میکنه اینجا توسط ابن اغده و ما الحمدلله الان رواهات دیگه هم داریم شیخ توسی هم در تحضیم داره رواهاتی که ابن اغده از ابن فضان فصد نهم کردن وقتی این چون اسمش مرکفر بوده پیم الله بوده بهش تیمی هم میگفتن نصلا به جز اول پیمالی تیم... هم میگفتن تیمالی این تیم الله نصلا بوده مثل افشمی نسبت به اون بحث نصلا به بوده اما علیه به حسر تیمی درست شد؟ بعد اما محمد این خطاب الواسطی که کلن نمیشناسی اما یونسفن عبدالرحمن خیلی عجیبه اگر مراد یونسفن عبدالرحمن معروف باشه بسیار بسیار در اینجا وجودش عجیبه اما احمد نعمر الهلوی خیلو بز نیستی نمیشمالا اما حماد الازدی که کلن نمیشناسی اما هشام الخفاف قال قال لي ابو عبد الله كيف بصراوت چیز عجیب اینه که در هر دوره باید که در کتاب روزه کافی آمده اولا ان این روایت رو خوندم الان مجبورم کمیش بخونید یک مقدارش هست همون یکیش رو به پدره نسبت دادن ابن فضل پدر یکیش رو هم به پسر نسبت دادن و در مصادر مستقل ما هم نیامده این خیلی عجیبه الا روزه کافی خیلی الان تهیور پیدا میکنه که این مثلا بلا نسرت چه دستی در کار بوده که اینطور قصه رو دوست بکنه کیف بسرها که به نجوم قال ما خلفت رو بره اکثر به نجوم مندیم بعد قال کیف در آرام الفلک اندخو فلک من دیروز توضیح هستم بعدم میان که فلک در اصطلاح همون از این چیزی بود در آیات چیزی فقال فأخست و قلمسو هستی کلا میگرستم چرخونگن فأدر توها. ادرسه های چرخون نمیشت دویوش دو دادن قال فقالی اذا کاند امرو علامات قولون هما بالبنات نش والجد یا جده والپرقده لا یوران یا دورون من منده در خدله ظاهرن مراد چیمی که این ها ستاره که اون جوی که تون دور نمیزن ستاره هایی بالا هستن جدهی که نزدیک خود یک دردشانین با خود فاصله داد قوله قول ثواب والله شيء انا اعرف ولا سمعت احد من اهل الصابره ببینید خفان کلی کم سفیر من از زهره جز جمعه رو خیلی عجیب سوال فکریه هر جو بحث میکنه خیلی عجیبه دو تا روایت کلینی هر دو در کتاب روزه آورده و این میشه کسانی هستن که خیلی شیطان بودن در جعل حدیث یکی به از فضائل فلا رو میشونه اساتید به بدون فضل پدر تو هر هم مجاهیل هست تو که بالکل نمیشناسی من که میگم به کلی اصطلاح برنده یعنی هر ممكن اسمش هم این نباشه اسم چیز دیگری باشه چیزی که فقط یه راه دارم به خیلی عجیبه ما اینا رو مشموله به کلی مشموله ده دل... من اسمش هم میدون اسمش این باشه شاید اصلا, اصلا, اصلا هیچ نباشه خیلی عجیبه قال بله کیف قاله تر سکینه من زهر جزنفی رو به بزید قال قلت حالا والله نجمون ما سمعتو بهی ولا سمعتو اهدا من ناشه کرد <تصفيق> قال سبحان الله فَا از خط تو نجمان به اثره فَعَلَامَا تَحْسِبُون اونجا داشت اولی تَحْسِبُون هر قناع یعنی شما فقط روی قهر حساب میکنید، روی نجومه لیگه حساب نمیکنید. قال كمل زهرت القمر جزء انفي روغه گزارشی الله قال كمل قمر خیلی عجیبه این انسان چیز تعجبی که داره در اینجا بعد در آخرش بعد یه اشکال امام میفرسه که به قول مردم مجلسی تو بهات این اشکال خیلی قضیه بعدش یه شرح هم داره من دیالا وارد اون شرحی میشم یه شرحی هم داره امام میفرما ما بالون اخرین التقیان یا حالا حاسمون یه منجم که این هست و پی هادا بود و یکی میگه آوازه این سوال حمده بکنیم پیوز ما میشیم هاشی که هم اون طرف این طوریه بعد که هر میکن برقیه ای که میشه فیحس با هادا به صاحبی دید رفت فن میلتقیان فیحس ما حده همه الاخر فا این کارت نجوم قال فا لا والا لا ما حده قال اصل حساب حق این النجوم بروابط درست و لیکن لا یعلمون ذلک الا من علم موالی در خلق کلهم هم. یعنی به واسطه مخاط نظر موالیشون به علم الهی است غیر از حضرت حق که آحادی اینها چون یک ارتباسی خداوند متعال بین نجوم و زمین و همین قرار اما اون درس نمیشه با این راههایی که شما درس نمیشه بعد ایشان بله مرحوم و ما با ها دا دلیل اون تامون الاخرت المنجمی مرهومه، به اصطلاح مرحوم مجلسی اطراف حالا که از اجایه بازیه حالا خیلی عجیب واقعا در کتاب نواده و حتیمه. که یک کتاب معروبی خیلی ازش حدیث درخور امولای بزرگان ما هیچ کس از این کتاب مغلق کرده خیلی این مطلب رو سیدم تاووز در کتاب نجوم محرفت ال... چیز اون علما ایشون گفتند هرچند محمود ایشون میگه در وجد تقی کتاب نواظر الحکمه تاریخ محمد بن احمد بن یحیی ربا و ال رضا قال قال ابو الحسن از ال رضا ال حسنی ترش منجم بود معروفه که صاحب دو تا برادر حسن بن سعد فضل بن سعد البته احتمالاً هر دوشون یه شکلم دست در سوال نظرضا دارن یکی از عجایب کار مرمون سه ساوست به این حسال نجوم گفتی این دو بغضر هم جزا شیعه بوده چی بیدم جده اجایه چون دوتا منجم بودن برای تحییب این نجوم اسم این دو نفر هم برده خیلی عزیزی واقعا سبحان آلا حضرت به نسل تمام کیف حسابو که در نجوم آلا ما برده ایمن هاشی ببینید آلا عبالحسن کم در نور الان الانون القمر خبر درجه کم در نور القمر الانون ی روال رواید از ساده با اون دهند این از نواده همه هم, هم سوال هم میده فاطره این با اون چند یعنی امان مخوان میگه شما فقط ارتباطون با ماه با بقیه کواسیب آشرایی نداره این حالا چی جور من خونم برای شما این انسان اصلا متحیره این جوری میشه؟ یک محللی که نجومیه معلوم علمیه درواشتن یک سندوی عجیروی گوی به ما حاضر استفاده کردند گوی به بم اول حضرت رضا نسبت دادن و می‌خواستن اصفاض بکنم که اصل مطلب حق مردم اشتباه کرده عجیب اینا من کمتر دیدم در روایت کم به نور مشتری علی نور زهره طب در درجه ثقال لا ادری ثقال نیست فیه چیزی آنها و ای ایث یعنی کمترین درجه ای از نجومیه تو از کم شبر نداری چرا اینو به بال گفت خدا خدا صلى الله على محمد و على تيجي ثم يعني سؤال واحد القمر على صور